تعنيس و... الفعل للفاعل تعنيس الفعل مو أنصار ده الفعل براي شي براي الفاعل الأمثلة صافرت فاطمة صافرت فاطمة تعود زينب دوت مثال عبر ديكي مازيكي مزاري كل فاعل كفاطمة وزينب هسان فعل آر چه آورده بود مؤنث آورده بود در گروه امثله دوم اگر دقت بفرمایید اششم سو تطلع اششم تا طلعو الحرب انتهت اینجا هم دو مثال آورد ماضی و مزارق اما در گروه سوم از امثله دقت بفرمایید سافرت الیوم فاطمتو او یا یعنی هر دو حالت جایزن سافرت الیوم فاطمتو میتونیم بگوییم سافرت الیوم فاطمتو میتوانیم بگوییم سافر الیوم فاطمتو ولی در امثله گروه از یکوتو اینجوری نبود اونجا واجب بود که فعل به شکلی میاند. می آمد ولی در شماره سی و چار و پنج اینطوری نیست که بعدن توضیحش رو در قواعد که چون بیان میدارد تکرار نمی کریم. شما امثلی شماره چار رو دقت بفرمایید تطلع و شمس یا میتوانیم بگویم یا تطلع و شمس شماره سه تعود و غدن یعود و غدن زیلبو هر دوتار رو میشه گفت میشه فعل رو مذکر کرد و میشه فعل رو مونس کرد شماره چار تطلع و شمس او یکلو او شمس شماره چهار انتهت الحرب انتحال الحرب یعنی شماره دوم باری دیگه تکرار کرده است چون در گروه دوم دو شمس و تکلو او فرق میکند تا بگوییم یتلو شمس متوجه هستید؟ در ببینید در شماره چهار شاید تلویز زیاد دقت نکند بگوید تکلو او شمس مثل شماره دو هست او شمس و ولی این فرق میکند درست هست که کلمات تکرار شدن ولی جمله به ای دیگه است. جمله به ای مثلا ده از شمس و فائل هست در حالی که تطلوع و شمس فائل از شمس هست بهمی دید؟ چون فائل قبل از فیل نمی آید فائل قبل از فیل نمی آید شماره پند جاعت الغلمان جاعت, ال جاعت الغلمان اینجا همی حرد و حالت رو جاعز است فیل رو معنیس بکرمود یا مذکر بکت سواکلو بکت سواکلو خواب سواکل چیه؟ سواکل مودم هست؟ سواکل که امو کا. اینو نمیدونیم سبحانت خوال خالد برو چی میخوای بگی؟ سواکل اونی رو بگن که به داغ کسی نشسته می نهیم خب بریم جلوتر تو من اون مثال آوردن برات واضح گرده ولی متاسفانه مغزت سری حرکت نکرد به سمتش ترموز مغزت زیاده سواکل جمع مکسره مثل غیلمان خب بیایید شما بیاید در قوائد هنا الشيء اللي هو بيعلن مدار يجي بوتانيف الفعل وبعد فعل بشكل مؤنث بكرهات در دو حالات الف إذا كان الفاعل حقيقي التانيث زمانك فاعل مؤنث حقيقي باشه مثلا سافرت فاطمة تعود زينب بس زمانك مؤنث فاعل مؤنث حقيقي باشد البته بين فعل ومؤنث حقيقي فاصلة نعمه باشد ببینید اذا كان الفاعل حقیقی التانيث غیر منفصل عن الفعل فاصله از فعل نداشته باشد در مثال سافرت اليوم فاطمتو چرا میتوانیم فعل مذکر به کار درست هس هست که فاعل مؤنث است ولی بین فعل و فاعل جامد است فاصله فاصله آمده است پس الف میگوید زمانی واجب است که فعل مؤنث باشد یک فائل معنس حقيقي باشد وبين فعل و فائل فاصلي <تصفيق> <تصفيق> نعمد باشد فاهمي دي بالله ناس <تصفيق> بالي مثل مثال صافرت فاطمة يجا واجب است تون يك فاعل مؤنث حقيقي دو هج فاصلي بين فعل و فائل <تصفيق> نعمد است با اذا كان الفاعل زميرا يعود على مؤنث زمانی که فاعل زمیر باشد فاعل چه باشد؟ مانند الشمسو تطلعو الشمسو تطلعو الشمس مبتدا تطلعو فعل مزاره هیه مستمر مستتر فاعلش هست به برمیگردد برمی به شمس که موننس مجازی است هرگاه فاعل ما زمیری باشد که مؤنث مجازی بر در اون حالت هم واجب است که فعل به چشکی شکل کار رود <تصفح> واجب است جایز نیست واجب است واجب است هر از هر چی تطلو اینجا واجب یا ای جایز آقای مولا سهر واجب اینجا فعل است باشه در الشمسو تطلو یا جایز کی بیت گفته بابا واجبه نمیشه. نمیشه. نمیشه نمیشه بچه ها اش اشمسو یطلعو میشه گفت و شمس ولی نمیشه گفت اشمسو اش یطلعو و خیلی فرق از بین این دو جمله شمس. چرا شان توضیح میدن موقعی که میگیم اشمسو اش تطلعو فائل در تطلعو زمیر هست اگر فائل زمیر باشه که به مؤنث برمیگرده باید به مؤنث باشه ولی اگر فایل خودش معنس حقیقی باشه زمین را باشه جایزه در یتلو و شمس جایزه بگی که یتلو شمس هیچ مشکلی ندار اگر بینید شمس یتلو چی فرق این فرق داره فایل چیه در یتلو در تطلو خب حیه هست هس. چون شمس معنس مجازیه فیا کلور آورد شاوردی اینجا؟ چرا؟ بیا شمس اینجا خواشیش می همه هم کی حالا کتابت رو اینجا نه نگه. اینجا بابا اینجای اینجوری میگه اذا کان الفایل دقت بفرما شماره قاعده 47 وم رو گیج نواش دقت بفرما. قاعده شماره 47 کتاب رو دقت بفرما. قسمت با اذا کان الفاعل زمیرا زمانی که فائل زمیر باشد مانند الشمس تتلع قبول داری آغای سهل که در الشمس تتلعو فاعل زمیر هست یا قبول نداری خب اذا کان الفاعل زمیرا يعود على مؤنث مجازی اتعنیث ضمیری که برمیگردد بر مؤنث معنس غیر حقیقی شمس محننس حقیقیه یا غیر حقیقی؟ بگو آقای آه؟ آه؟ آه، آه، آه، غیر حقیقیه پس زمیری که در او هست الان به محننس غیر حقیقیه بر میگرده یا نه خب پس اینجا داره کتاب میگه واضیبه توس کجا داری بیاری؟ خب الان دیگه قانه شدی پس بریم شماره چلو هشتم از و تجریل مستقرن اینجا واجب است که فعل به شکل مهنس بکار بره چرا؟ چون فائل ما زمیری هست که به مهنس بجازی بر میگرده برخلاف خلاف و اینجا فائل خود شمس هست نه زمیری که به شمس بر بگرده اینجا فائل چه هست؟ در یطل و تو میتونی بگوی یطل و میتوانی بگوی الشمس انا لازم فاعل باشه دیگه اون ضمیر نباشه اون دیگه هر دو آره اگر مؤنث غیر حقیقی بود ولی اسم ظاهر بود نه زمیر میشه شايفه مؤنث ها ور می شه مذکر ولی اگر نه فائل ضمیری بود که به مؤنث مجازی برمیگشت به حقیقی که برگرده خب که درصد به مؤنث مجازی برنگشت در اون صورت دیگه او واجب میشه پس این فرق بود ونفس الظاهره ظاهره اون ضمير هست يجوز تعنيث الفعل جاهز است تعنيث الفعل اذا الف إذا كان الفاعل في حقيقه مفصولاً مفصولا عن فعلي زماني كفاعل حقيقي باشد مؤنث حقيقي باشد وبين اون و فعل فاصله آمد باشد مانند سافرت اليوم و فاطمه تو. ان جائز اس كفله بشكل مذكر بالكاربور وجائز اس كفله بشكل مؤنث بالكاربور با اذا كان الفاعل اسما ظاهرا مجازية التانيث زمانك فاعل اسم ظاهر باشه ولمؤنث مجا مجازي باشه فيين حاله ان جائز اس كفله بشكل مذكر يا مؤنث بالكاربور بله جيم اذا كان الفاعل جمع تكسير زمانك فاعل جمع مكسر باشد. اینجا هم جائز که کفیر رو برای مذکر یا بله بله ماننده جات الغلمان جا الغلمان گفته للمذکر مذکر یا والمؤنس حالا اون جمع مذکر مکسر چی برای مذکر ها چی برای برای مذکر هم الغلمان جاعت الغلمان برای بکت بک بله در است قالت الاعراب قالت ال... ال... قالت ال... قالت یهودو ال... سوته في المدینه فرقی نمیکنه جایز است که فعل رو به شکل مذکر به یا مؤنس به کارش برد به شرفی که حضرت مولانا سهیل دیگر از اون گیچه های سادگیش به سراغش نیاید امروز سبحانه بش داده اید یا نه